ماهی که در اون قرار داریم و روزهای آخرین او هست ماه رجب هست ماهی که یکی از ماه های حرام اسلامی هست تو این ماه از نبی ما یک دعا ثابت و این دعا در این یک مناجات و یک استغاثه در مقابل ذات احدیت الله یک پیام داره و اون اینه که نبی ما دعا کردن اللهم بارک لنا في رجب و شعبان و بلغنا خدایا برکت بده در رجب و شعبان ما و خدایا ما رو به رمضان برسم و یک دعا هست و برای مؤمن شایسته هست که در حقیقت از زمانها و اوقات و از فرصتهایی که در زندگی او استفاده میشه کمال بهره رو ببره حضرت مولانا الیاس رحمت الله تعالی در منقذات و فرمودن که در ایام زندگی شما یک ازمنه و زمانهای بسیار خاص و ویژه شاید ما نتونیم اهمیت فضیلت و برکات اون وقت رو احساس کنیم اما از ذات الله دعا کنیم که خدایا اون برکات و اون رحمات و اون فضل‌های خاصی که در اوقات خاص به خاصان خودت نصیب میکنیم ما را هم محروم نکنیم اینه پی ایام دهرکم نفحات در طول زندگی ما نفحات قرب خدا در حال وزیدن هست اون شعن اجتباه و شعن گلچین کردن خدا در حقیقت در طول زندگی ما ساری و جاری هست لحظات خاصی هست برای اجابت خداوند با فضل خودش برای بنده های خودش فرصت ایجاد می کنه در طول روز خدا فرصت ایجاد میکنه در طول هفته خدا فرصت ایجاد میکنه در طول ماه خدا فرصت ایجاد میکنه در طول سال خدا فرصت ایجاد میکنه شاید بنده من دست از غفلت بر و بعدین فرصت های ویژه بتونه کمال استفاده رو ببریم تو ایام روز ما دو وقت رو نبی ما خیلی تاکید کردن برای اینکه ما بر اون اوقات رو در طول شبان و روز به دعا سپری کنیم و این اوقات در حقیقت موقع رد و بدل شدن فرشته ها و موقع بلند شدن اعمال ما به آسمان ها هست. این دو وقت که در آیات و آحادیث در رابطه با این که این اوقات رو به استغفار و دعا بگذارونیم خیلی تاکید شده و وقت صبح و وقت عصر هست در این اوقات در حدیث آمده که الله سبحانه و تعالی از این ملائکه‌ای که رد و بدل میشن بعد از نماز صبح بعد از نماز عصر با وجود علمی که داره ازشون سوال میکنه کیف ترکتم ای غادی چطور از پیش بندهای من با چی آمدی چطور دیدینشون چطور بودن اونها فیکولون هم و هم یصلون و هم و هم خدایا صبح هم از پیششون اومدیم در حال نماز بودن نماز صبح میخوندن اخرم اومدیم در حال نماز بودن. این در حقیقت گزارش کاری هست که خداوند از ملائکه خودش در این دو فرصت میگیره. در حدیث دیگه یا آمده در مسلم شریف که توتخو ابواه بل جن یوم الاثنين و یوم الخميس. این باز در رابطه با ایام با برکت طول هفته است. طول روز دو وقت خدا برای جبران موفات روز برای ما بذاشد این اوقات چقدر خوبه با استغفار نامه عمل ما بسته بشه. چقدر خوبه در این ساعات ما در مسجد نشسته باشیم معتکف باشیم و ملایکه در حالی پیش خدا با نامه عمل ما برد که پرونده ما با اعتقاف بسته بشه پرونده ما با استغفار بسته بشه پرونده ما با دعا با سلاوت بسته بشه دیگه در حقیقت اون آخرین مرحله عمل پیش خدا خیلی مهمه یه فرصت. در طول روز از این دو فرصت استفاده کنیم. تو شبم خدا یک فرصت گذاشته، موقع سحر قبل از اذان از صبح موقع اجابت دعا هست. رحمات ویژه الله به آسمان اول میاد و سال میکنه کیه که از من مغفرت بخواد، مغفرتش بکنم اینا اوقات خاصه. طول هفته خدا دو تا روز رو گذاشته که در این دو روز درهای بهشت رو خداوند باز میکنه. اون دو روز چیه دو و پنش و برای همین بود که نبی ما در این دو روز روز می گرفتند و در این دو روز لکل عبد لا يشرك بالله الشیع فیغفر لکل عبد لا يشرك بالله الشیع الا رجلا کانت بینه و بین اخیه شحنا همه را الله مغفرت می کنه جز اون کسایی که در دلشون انحراف عقیدتی و شرک خلاف پرستیه و جز اون کسایی که در دلهاشون کشینه این افراد مغفرت نمیشه. این کسایی که در دلهاشون کشینه در حدیث آمده که خداوند به ملائکه میگه اون بروها و این حتی ها. به این دو نفر خوب نگاه کنه فعلا مغفرت اینها رو نوکوف کنید مغفرت اینا ها رو معلق کنید تا این دوتا با هم دیگر آشتی کردن صلح کردن دل هاشونو خالی از چینه کردن بعد اینا رو مغفرت کنید بقیه رو مغفرت کنید لذا در این ایام خاص تلاش کنیم که اولا با استغفار و با درود و با تلاوت و با اعتقاف پرونده عمل ما بسته بشه و در ثانی تلاش کنیم که این ساعات خاص بدون چینه در حالی که ما از هر نوع حقیدی چینهی شحنایی نسبت به مسلمان غلی غشی نسبت به مسلمان ها صافه نامه اول ما بسته چینه و اضافت چیز خیلی برای الله افت و برای الله درگذر کنی نفتح کسی بود که در واقع افت و تحمد زدن به عمول مومنین سیده سن صدیقه که در حقیقت منافقین و یهود این تو و چیده بودن ناخواسته در این موج شایع فراکنی ایشون هم داخل شد بعد اینکه آیات برایت عمول مومنین سیده سن صدیقه آمد حضرت عبوبک گفت دیگه چونشون ولی معمت مستح بود و تو خونه ایشون بزرگ شده بود نمک پرورده ایشون بود خیلی کمک کرده بود شد. بعد که این واقع پیش آمد حضرت اووبک گفت دیگه من با تو کاری ندارم از این به بعد تو دیگه مسئط با من جداه. آیا قرآن ناظر شد نسبت به عوبک که اوک ای آیا دوست ندارید ال تحبون ایغفر الله لکن؟ آیا دوست ندارید الله از شما درگذر بکنه. حضرت اوک بک تا این رو شنید با یک حالت وجدی فرمود. بله پروردگارم دوست دارم و دو مرتبه مستح کرد؟ و همون کمک های قبلی که نسبت رو می کرد دو مرتبه کرد لذا از بنده های الله بگذاریم تا الله از ما بگذره ما نسبت به خدا چقدر خطا کردیم ما نسبت به خدا چقدر جفا کردیم اگر دوست داریم الله از ما بگذره ما از بنده های الله بگذاریم همه رو به خاطر الله عفو کنیم دل هامون خالی از جذبه انتقام باشه خالی از در حقیقت شماطت باشه نسبت به دیگران از ضربه لطمه و از در حقیقت چینه به چی میگن به یک خشم فرو کشیده به یک خشمی که من یک جای میخواستم سر یک نفر فرود بیارم اما شرایط برای من فراهم نشده یا تو موقعیت ضعف بودم یا او آقا در دسترس من خارج بوده من نتونستم این و سرش فرو بیارم حالا اینا رو میکشم درونم خودم از درون تخریب میکنم به جرم او از خودم انتقام می گیرم زندگی رو برای خودم در حقیقت پر درد و پر بدبختی و رنج می کنم و از طرف دیگه از این رحمات ویژه‌ی خدا محروم میشم و از طرف دیگه دنبال ضربه زدن و دنبال انتقام و دنبال اینم که شکست او رو ببینم این خیلی بده. لذا به خاطر الله عفو کنیم. نهایت یک چیز اگر ما عفو کنیم، ببخشیم، دنبال انتقام نباشیم. اما اگر در دل ما دردی بود به تعبیر آمیانتن در دل ما یک ناگواری بود بعضی میگه تو دل ما یک ناگواری نسبت به فلانی هر کار میکنن این رو نمیتونم اد... این غیر اختیاریه این اللحظ شهر ما مکلف به امور اختیاری هستیم این چیزی که دست ما نیست اشکال نداره اگر ترسی همی رو هم از خود دفت کن اما اگر این دفت نشد اشکال نداره فقط جذبه انتقام نواش. فقط از شکست او اظهار شما تس نکن اظهار خوشی بر شکست او نکن و دنبال در حقیقت ضرب زدن و نیش زدن به او نباش بگو معاف عفت کردم به خدا سپرد کردم لذا در طول هفته هم خدا برای ما فرصت ایجاد میکنه تو به تعبیر ابن قیم رحمت الله تلاله ایشون میفرمند که خداوند رفع اعمال, اعمال اعمال ما بلند میشه در طول روز گفتیم در بعد عصر و بعد نماز صبح پرونده اعمال بسته میشه ملائکه رد و بدل میشن اعمال ما رو پیش خداون عرضه میکنه روزانه این اعمال دیگه بایگانی میشه با میره از این دو وقت درست استفاده کنیم اکابر ما اصلاف ما از این دو وقت درست استفاده میکنه عصر و صبح سعی میکنه این دو وقت رو در ذکر و یاد خدا بگذارونن در مسجد حتی لی و در طول هفته رفع اعمال رفع اعمال یومیه داریم رفع اعمال اسبوعیه داریم رفع اعمال سنویه داریم رفع اعمال خطامی داریم چند مدل رفع اعمال داریم ابن قیم میگه یک مدل رفع اعمال هست که در طول روز میشه که گفتیم صبح عصر رفع اعمال داریم در طول هفته که در چند شنبه و چند شنبه هست دوشنبه و پنج شنبه هست و در حقیقت یک رفع اعمالی هم داریم که در طول سال هست این رفع اعمال طبقی یک حدیثی در شعبان برای همین در این حدیث آمده که حضرت اسامه بن زید رسول الله سوال کرد یا رسول الله در شعبان من شما رو می‌بینم زیاد روزه می‌گیرید حکمت و علت این کار چیه رسول پاک فرمود قال ذلك شهر يافل بین رجب و رمضان یک ماهی ما بین رجب و شعبان که اکثر مردم از این ماه غافل است چون اون شهر حرامه این شهر سیامه وسط این دوتا یک ماه دیگه است به نام شعبان مردم تو این ماه عموما غافلند عموما عملکرد خاصی ندارن اما هو شهر ترفع فيه الاعمال الى, الى رب العالمين. این ماه مایی که اعمال ولی آدم به سمت الله پیش میره یعنی اعمالی که شما طول سال داشتی در شعبان عرضه میشه به ذات احدیت الله فاحب اي يرفع عملي وانا صائم من در حالی دوست دارم پرونده اعمال سالیانه من بسته بشه و به الله عرضه بشه در حالی که من روزه برم هر همین بود که امل مامین سیدت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عن رسول پاک به اندازه‌ای که در شعبان روزه می گرفتن در هیچ ماهی غیر رمضان روزه نمی گرفتند ها رمضان که متلش جداست روزه فرضه اما روزه های نفلی پیامبر در هیچ ماهی به اندازه شعبان نبود شعبان از همه ماه ها بیشتر روزه می گرفتند لذا تلاش کنیم موقعی که این اعمال ما لاقل بسته می و به آسمان ها میره خوشبویی استغفار خوشبویی درود شریف خوشبویی تلاوت خوشبویی اعتقاف در مسجد داره آخر این نام عمل که بسته میشه این رو زمینه کنیم و به درگاه الله ارزه کنیم لاغل این وقتها غافل نباشیم عمومن این وقت ها جه غفلتم هست بیشتر مردم تو این لحظات خاص تو غفلت هست. ما غافل نباشیم ما از این تجلیات قرب خداوند که در حال وزیدنه ما از این شعن اجتبا و کشش الهی که در این اوقات نصیب خاصان میشه ما بی بهره نشیم. از بزرگان ما هست که موقعی که قبل از نماز صبح به مسجد میامدن با ایک حالت خاص میامدن هوا رو بیشتر استنشاق میکردن و باید حالت حتی در رابطه با ادرس شیخ الادیس مولانا شهیدی آمده که ایشون میگن نماز صبح که به سمت مسجد میاد جلوتر هم میامدن یک رو 20 دقیقی نیم ساعتی جلوتر از وقت به مسجد میامدن تو را میفرمدن هوا رو نفس عمیق میکشیدن و سر رو میگه گای وقتا برحنه میکردن و امامه رو زیر و میکردن. بعد یکی از شاگردان میگه من سوال کردم حضرت این کار برای چیه؟ فرمودن این وقت وقتیه که غافلین که در خواب اما صالحین هم, هم که ربنا بنا صالحین که که انفاس قدسیه دارن صالحین هستن که در این وقت اشکی دارن آهی دارن ربنای دارن و تجلیات قرب الله الان در حال وزدیدنه غافلین محرومن صالحین الان وقتی که بیدارن و دنیا الان دست صالحینه غافلین که تا قبل از ازان صبح به سیدی مبتزل و شبکه ماهواری و پارتیان ناسالم و نشستهای نابجا و غیبتها مشغولن ازان صبح ببینید شراخونش خاموش شد اما صالحین وقت بیدارشون علانه من دوست دارم از اون انوار و تجلیاتی که از آسمان برای خاصان خودم میباره از اینو بهر ببرم ببینید؟ استاد ما حضرت مولنه حکیم صاحب میگه موقعی که در پرواز بودن تو هواپیما هواپیما که خوب اوج گرفت اعلان میشد که الان اوج حرکت هواپیما هست اونجا میفردن حضرت بیشتر ذکر بگردن و ایک حالت خاص بهشون دست میدن نوستن چرا حضرت این کار رو میکنید؟ میفرمودن که اینجا از لوس گناه گنختارها خالیه اینجا در حقیقت جایی که دهرالفتاد فلبر و البحر به ما کسبت عید الناس از این اینجا کمتره لذا اینجا من بیشتر استغفار میکنم بیشتر دعا میکنم استفاده کنیم از این ایام خاصی که در حقیقت هست برای رجب این دعا از پیامبر ثابته و برای شعبان هم که گفتیم موقع رفع اعمال هست و عملی که از پیامبر در شعبان بیشتر ثابته که سرس روزه است. که روزه رسول پاک در شعبان حکمتی داره ببینید همونطور که ما قبل از نماز فرض به گفته ابن قیم رحمت الله حتی ما نمازهای نافله داریم نمازهای سنت داریم و در حقیقت این نمازهای سنت و این نمازهای نافله بهلیزیه مقدمیه برای چی؟ برای اینکه شما آماده بشی برای فرض خدا بلا تشبیح بلا تشبیح یک رزمیکاری که میخواد رو دو شک بره یک ورزشکاری که میخواد تو مسابقه بره قبل از اون به قول مرور خودش رو آماده نکنه یه دفعه وارد گود نمیشه یه دفعی وارد میدان نمیشه خودش رو گرم میکنه تا بتونه رو دو شک و تو اون میدان رقابت خوب کاردار و خوبی داشته باشه. چیز خوبی رو به نمایش بگذاره حالا ما میخوایم وارد فرض خداوندی بشیم فرض خداوندی. جایگاه خودشو داره این اعلانی از جانب الله است مثال دیگه مثال دیگه من اینا رو فقط برای تفهیم مطلب میذارم حیرانم گاهی وقتا که از کجا کلمات بیارم جملات بیارم چطور تشویح کنم گاهی وقتا هم انسان خودش میگه خاک بر فرق تمثیله من خدا این چه تمثیلی بود اما چاره ای نیست گاهی وقت آدم محدودیت کلمات و جملات هست الله خودش عفو کنه ببینید یک فردی میخواد پادشاه اعلان کرده که شما بیا پیش من بیا اینجا میخوام با تو هم کلام بشه میخوام با تو حرف بزنم دوست دارم با تو حرف بزنم بیا اینجا از طرف پادشاه اعلان میشه سيفارد با خودش میگه من میخوام برم اونجا با پادشاه همکرم بشم باش حرف بزنم جلوتر متن آماده میکنه تمرین میکنه جلوتر برای خودش در حقیقت تصور میکنه که الان من جلوی پادشاه الان با این حالت باید برم این کلماتو باید بگم اینا رو با خودش هی دور تکرار تمرین دور تکرار تمرین آمادگی از هر حیث برای خودش پیدا میکنه که اونجا ترسم بشور به بهتر هم کلام او بشه ببینید حضرت مولانا الیاس میفرما حکمت این نوافل و حکمت این سنت که از تیانبر قبل از قرائد ثابت همین که ما آمادگی پیدا کنیم برای همکلامی با ذات احدیت الله نماز نجوایه با الله همکلامیه با الله رمزان و روزه چیزیه که الله میگه از لی روزه از منه من جزا میدم به روزه دارم روز مال منه این شعن روزه است حالا ما میخواییم وارده یک ماهی بشیم که خدا بر ما فرض کرده قبل از وارد شدن به رمضان، یک عادت نباید باشه با یک عبادت با استهزار فضائل با در حقیقت در ذهن ما متصور بشه وارد چه ماهی میخواییم بشیم آقا این ماه ماهی که فتح مکه در این ماه پیروزی بدر در این ماه گستانتنیه در این ماه قرآن در این ماه نازل شد این ماه ماهیه که ماه اجابت داست این ماه ماهیه که در این ماه هر نفل برابر فرض هر فرض برابر هفتات فرض ماهیه که روزدار داشت اجابت میشه فرصت بیجر ببینید زفرون کارهای ما قبل از این که وارد اون فصلی بشن که میخوان زفرونها رو برداشت کنن از یک ماه دو ماه جلوتر ذهن و فکرشون درگیره چیکار کنیم از کجا کارگر تایید کنیم؟ از کجا وسایل تایید کنیم؟ اینا رو از کجا بفروشیم؟ اینا رو چطور مستقیم بفروشیم؟ چطور اینا رو به قول معروف پاک کنیم و بفروشیم؟ از یه ماد دو ما دو ماژول جلوتر هم دارن آمادگی ذهنی و فکری هم آمادگی در زمینه اسباب و لوازم می‌کارند. فصل کاری فصل کاریشونم که شروع میشه، همین آقایی که قبلا ساعت 8 صبح به زور و زحمت بلند می‌شد، الان میینه چهار صبح قبل از اذان صبح بیداره. خوابم نداره، خوراکم نداره، استراحتم نداره. تک و دو میزنه، دوندگی میکنه. هر وقت میشم میگه خب چه خبره جنابین؟ اصل کار منه. این این این چند روز دوندگی من به در طول سال من تاثیر داره. اگه من بتونم برد اقتصادی قبو بکنم در طول سال من استفاده داره. تو فصل انتخابات میبینید نامزدها و کاندیدای انتخاباتی اصلا خواب نداره. والله گاهی وقتا آدم به همت اینها میگه شاد شرافت بندی از اینجا به اونجا از اونجا به اونجا اینجا مصاحبه اینجا نشست اینجا برنامه اونجا فلان به قول اینجا چنین و چنان یک زمانی یک خانمه به آقاش گفت سیاست چیه گفت سیاست تو بله تو ببین قبل از اینکه من میخواستم با تو ازدواج کنم چه وعده‌ای به تو دادم خب وعده دادی که حجی وعده دادی که خانهی وعده دادی که درآمد اینقدر همقدر وعده دادی که به قول مروح جایزیه اینطور و از چقدر اجرا کردم عملی کردم والله هیچی گفتی سیاست اینه هن که موقعی که میخوای یک پست بشی مقام بشی بگو آقا صد میزنم و آقا اینجا رو فروتگاه میزنم و آقا اینجا رو زمین رو به زمان میچست و آقا اینجا رو لس آنجلس میکنم و اینجا رو خدمت شما فلان میکنم و اصلا افشار نیگارا رو میارم تو شهر شما اصلا باشه دریا نداشته باشه بندر میزنم تو اینجا ولی بعد از انتخابات هم فروت و مال کار خود گویش نمیشه این بعد دقیقا خب ایام انتخابات که میشه مینه اینه خستگی نپذیرن چون فصل کاری سیاسی این هست یا یک تاجر فصلی که برای تجارت هست یک کاسب میگید تو اون فصل اصلا به فکر اصطراحت و خورخاب همینطور رمضان فصل عبادی هست برای بنده ها و مؤمنین و مؤمنات تو این فصل مؤمنین کمار حمتو می همطور که تعبیری که در احادیث آمده که رسول با کمار حمت رو میبرد عماده بشیم آه برای خواب و خیلیه برای خوراک و خیلیه برای استراحت و خیلیه رمضان فصل عبادیه و حکیم الله فرماند عبادت رمضان بر طول سال متأثر داره اگه تو رمضان گناهی ترک کردی بعد از رمضان براد آسانه اگر تو رمضان به عبادتی عادت کردی بعد از رمضان براد آسانه تو رمضان یک اخلاق رذیل و زشت رو ترک کردی بعد از رمضان برات آسانه ما تمرینه مای بندگیه باید به یک آمادگی بارد رمضان بشه لذا نبی ما از رجب برای رمضان شکار میکرد؟ دعا میکرد اللهم بارک لنا فی رجب و شعمال و بلغنا رمضان یک فرصت ویژه برای کل امت که در این فرصت همه رو به الله بیاریم اگر ما میخوایم الله دو مرتبه در این رمضان ما فتح بیاره، گشایشی بیاره راه برون رفت از همه معضلات رو برای ما هم بار کنه. راش اینه که از این فرصت استفاده کنیم از رمضان نبینید وضعیت اون چطوریه؟ در افغانستان هر نوع بمبی بی به سر ما مسلمان ها دارن امتحان میکنن تو مسجد توی جلسه دینی ختم قرآن نونهالان بچه های معصوم به سرشون بوم میریزن باز همینا در کشورهای خودشون همین امریکایی که تو افغانستان جار میزنن آقا مشور نمیخواید شما چند مدتی که در این افغانستان آمدید چه کار کردید؟ تروریست تضعیب شد زیر های اقتصادی و سیاسی ما رشد کرد کشور ما از این جنگ زدگی فقر و افلاس در آمد نه هیچ غیر از این که بومبا رو به سر ملت خودمون بیختید غیر از این که ما در بومبهای خودتون آوردید تو مملکت ما تجربه کردید که دردت تخریب اینا چقدر؟ ما مشکایی خودتون درست کردید ببینید آقا نمیرن بله این وضعیت امت شده امروز که در حقیقت سرنوشت ما افتاده دست یهود نصارا دست کمونیسم، دارن تعرف میکنن به هم دیگر آقای این قسمت مالشوهای این قسمت بدبستون دارن ما رو به هم دیگر دارن در حقیقت تعارف میکنن ما این وسط حیران سرنوشت ما رو با دیگران تصمیم بگیرن از این وضعیت دفتر چی میگاد بشه تو میانمار وضعیت مسلمان ها او تو فلسطین وضعیت مسلمان ها این تو در حقیقت شام بمب های در حقیقت شیمیایی رو به سر در حقیقت مردم دارن میریزن به خدا فرعون با رعیت خودش این کارو نکرد و لا فرعون ان قد صفاق و خنا شامند بعد همین افراد به خاطر این که بیان و خودشون رو دایه مهربان تر از مادر جلوه بدن و خودشون رو خیلی انسانهای رعوف و نقدوستی جلوه بدن یک گروهی که توی لوله گیر میکنه به رسانه ها زنگ میزنن به تمام خبرگذاری ها زنگ میزنن های ملت بیان جمشید دوربینا رو اینجا زوم کنید که ما میخوایم یک گروهی رو از این چادر بیاریم ما اینقدر نقدوسیم گروه را از اینجا ما نسبت به حقوق حیوانات اینقدر حساسیم خوی خیلی خوبه اسلام ما قبل از اینکه که شما بگید اسلام ما گفت زنی آبد گروه ای رو داخل اتاقی حبس میکنه نمیگذاره بخوره نمیگذاره چیزی بنوشه میمیره این زن میشه جهنمی با وجود این که آبد بوده اسلام ما قبل از شما گفت من مسلمان شاید این تو اجرای این مشکل داشته باشم به تعبیر اقبال اگر ضعفی همه است تو مسلمانی من نه تو اسلام اسلام ما گفت یک, یک سرد بدکار میاد سجی رو به خاطر رضای الله تو دل بیابان آب میده خودم مغبرتش بکنه اسلام ما حقوق حیوانات رو به مراتب از شما بهتر برن کرد اما شما میاد از اون طرف توی جنگ روانی، جنگ رسانی عوام فریبی میکنید با یک سیاست پپولیسمی عوام رو به سمت خودتون مایل میکنید و از اون طرف دیگه میان بوم میریزن تو مسجد بر سر جوان نوجوان ما سلسانگ خون میشه ما همون مدت تو افغانستان بودم بنده حتی بعد از این جریان بنده افغانستان رفتم. مادری خودش تعریف میکنه با چشمی اشبار که دوتا بچه من حافظ قرآن قبل از اینکه برن برای این ختم و برن برای اینکه جشن فرق تحصیل خودشون رو بگیرن عمرن خالد دو تا دسته گل تو افغانستان مرسومه که وفاض و اولمایی که فرق تحصیل میشن دسته گل دور گردنشون دو تا دسته گل خودشون از بازار تهیه کردن آوردن پیش من دو سه ما درجا ما الان داریم میریم اونجا جشن ما هست یکی دو ساعت دیگه مراسم ما تمامه ما میایم اینجا دم در که ما ما مادر تو اینا رو دور کردن من, من یک ساعت دو ساعت بعد جنازه دوتا نوجوان منو آوردن و دست گل هلو. اونا رو رو جنازه اونا گذاشتن کجا اون کسایی که به قول معروف از حیوانات حقوق حیوانات دفاع میکنن؟ کجا اون کسایی که برای گروه رسانه هاشون همه رو میارن چرا از این پدر و مادر صدایی در نیامد از این مادر داغ دیده آه و فقان این چرا رسانهی نشد چرا فخش نشد؟ چرا این هواپیماهایی هایی که بلند شدن از کدوم فروتگاه بلند شدن؟ بومبشون از کجا تهیه کرده بودن؟ این سپاکانی که کلید این بمب رو زده این مال کجا بودن؟ شما نمیتونید پیدا کنید اینا رو؟ شما نمیشناسید اینا رو؟ اگر اینا به شما وقت نیستن و دستتون توی یک کافه نیست چرا این رو نمی قصر ملت لا تو این وضعیت که ما امروز فلسطین رو داریم می‌بینیم میان ما رو داریم می‌بینیم عقوته رو داریم می‌بینیم بمب‌های شیمیایی که بر سر خواهر و مادر مادرم دارن می‌ریزن می‌بینیم افغانستان رو داریم می‌بینیم عراق رو داریم می‌بینیم یمن رو داریم می‌بینیم کل امت دستش تو خون تو این وضعیت والله اگر من تو این ایران درس عبرت نگرفتم و اگر من به خود نیامدم دستی به دعا بر نداشتم تعلق با الله برقرار نکردم و الله قسم ممکنه این سرنوشت بد برای منم تکرار میشه. یک لحظه یک لحظه فقط خودت رو بگذار به جای اون پدر یا مادری که دوتا جنازه یک دفعه میاران جلوش میگذارد اون پدر و مادری که قرار دستگل رو گردن بچه شون بندازد قرار جشنه اختتام قرآن رو براشون داشته باشه. یک لحظه تصور کن دو تا بچه من جنازشون جلوشونه یک لحظه, تنف... یک لحظه با خود تصور کن که بچه من با بوم به شیمیایی خدایی نکرده الان نمیتونه نفس بکشه جلوی چشمان داره جمع میده یک لحظه تصور کن مثل میانمار که بچه من رودرم زنده زنده آتیش میذارد یک لحظه تصور کن که بچه من تو فلسطین قلب سنگی دستشه از اون طرف گلولی سهیونستی میخورد تو سینش که میخواد از قبلی اولش اشتفا کنه به تعبیر یکی از علمای عرب قبلی عبادت ما کعبت الله قبلی جهاد ما فلسطینه قبلی جهاد ما بیت المقدسه بیت المقدس یک سنده برای ما هر زمان سلس هر موقع به طول مقدس دست ما بود یعنی عزت ما هر مقدس ما رفت یعنی رکود ما یعنی این حفاظ ما این سنده می سندو از ما بگیرن کی میخوایم ما به خود بیایم کی ما میخوایم تکان بخوریم و متوجه بشیم لذا دوستان من رمزان در راه از همین الان مشغله ها رو کم کنیم جار و جنجال و دقدقه های دنیا رو کم کنیم خودمون رو آزادتر کنیم خودمون رو آماده کنیم برای اینکه وارد رمضان بشیم با این دقدقه های فکری با این جار و جنجال های علکی دنیا که خودمون برای خودمون درست کردیم به تعبیر مولانا میگه جان همه روزت لگت کوب خیال از زیان و سود و از خوف زوال نی صفا می ماندش نی لطف و فر نی سوی آسمان راه سفر درگیرم روزانه که نام من نمود من شهرت من آه، نمیدونم رسم و رواج جامعه آها مردم به چه دیدی به من نگاه میکنن قضاوت مردم نسبت به من چیه آه، اسم من تو جامعه چیه یک دفعه یک دفعه درگیر همین نام و نمود و رسم و رواجم یک دفعه به من میگن جنازه چی شد؟ همه رفت درگیر این تعلقات پوچ و بی اساس دنیا که چی به من وصل، چیم از من بریده کیو به دست آوردم، کیو از دست دادم اون فلانی رو بگیرم این از دستم نره این فلانی مال من باشه با همین تعلقات دنیا مشغول یک لحظه میبینم همه این کسایی که یک عمر تلاش کردم تا اینا رو از دست ندم تنکاری که برای من میتونم بکنن یکی اینه که پای تابوت بگیره یکی کفنی یکی قبری یکی بره با سرخانه همه کنه که شب من اونجا باشد یکی برای من گلابی بخره رو من بپاشد نا هم هرکی بیلی دست بگیر و آخرین ابراز محبت اینا اینه که یک بیلخاک رو من بریزن و هنوز صدای پای اینها رو میشنوم که به من پشت کردن میرن سوال شروع میشه من رب بک، من رب بعد تازه میفهمم همه اینا خواب و خیال بود و دروغ بود، دنبال اینا بودم. اینا لگت کوبای خیال بود. اینا چیزای علکی بود که با خودمون درگیر اینا کرده بودم. خودمون رو از همه اینا فارغ کنیم. از نام و ننگا و رسم و رواج ها و آقا قضاوت مردم چیه؟ نگاه مردم چیه؟ من از نظر مردم لقبم چیه؟ مردم به چی دیدی به من نگاه میکنن؟ برای دیگران زندگی نکنی. برای این تعلقات زندگی نکنیم اگر این تعلقات رو هم داریم برای الله داشته باشیم فرزند و محبت بکن به خاطر الله ازش یک افتخار آخرت درست کن با همسر محبت بکن چون دینت گفته نبی تو گفته با همسر محبت کن با دیگران محبت بکن اللهی و باللهی از این دوستی خودت یک سرمایه بر آخرت درست کن رجلان تحاب با فله استمع علی و تفرب علی به خدا اینجج دلدادن نیست اینجا جای موندن نیست برد برین وضعیت اسفناکی که برای امت هست و وضعیت دردناکی که برای مسلمان ها در اقصانقات و عالم هست اینا ما رو باید به خود بیاره لا اغل تو رمضان دستای ما بلندشه تو رمضان دل حیवता کن محرم تو رمضان چشمه ما عشق دار بشه تو رمضان بر کل امت بر خودمون خانوادمون کل امت دعا کن تلاش کنید انشاءالله نبی ما در طول عمر مبارک خودشون بعد از بعثت رمضان رو در اعتکاف بودن دهی اخیر رو کل عمر خودشون به استثناء یک دهه یک به یک سال که خب بنا به علت بود اما یک سال قبل از وفاتشون رسول پاک دو ده 20 روز اعتکاف در مسجد بودن لذا طوری ریزی بکنید که وقت ما تو رمضان فارغ باشه از جارو جنجال ها و از این شبکه های مجازی تو رمزان رو همیشه ترک کنید رمضان رو ترک کنید حداقل رمضان رو اول رمضان که میشه کلا دیگه از شبکه های مجازی بیان بیرون از تلگرام و از واتساپ و از هر چی که از بین بیرون از اینترنت بیان بیرون دیگه واسه ماه تبتل ماه خلوت ماه ارتباط با الله ارتباط با غیر الله رو تو این ماقصد کن این ماه دیگه ماه سریال و ماه فیلم نباشه این ماه دیگه ماه گردش و تفریح نباشه این ماه دیگه ماه در حقیقت غیبت و دروغ و تهمت دیگه نباشه این ماه رو خالی کنیم از معصیت از گناه و این ماه رو ماه ارتباط با الله قرار بدیم الله از فرصت خواهی رمضان انشاءاللہ از همین الان برنام رزی کنید فرصت خواهی رمضان افطار سحر نوغه های اجابت دعاست انشاءاللہ بحرمان بشید الله توفیق بده دعای نبی رو دو مرتبه تکران میکنیم که اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان خدای همه ما رو توفیق بده که رمضان برسیم و رمضان رو دریابیم یک ماهو می‌کنم یک دو روز چند چند روزه رجبع است؟ بی صاحب شعبان در ایران هست که ما آه 29 تقریبا رجب هست یعنی دیگه عملا یک ماه مونده و فد مات شما شبد که یک ماه دیگه مونده و ماه رجب در حال اتمامش شعبان دیگه داره شروع میشه تو ماه شعبان کثرت روزه و از رنبی ما ثابته آمادگی کنیم و این روزه های ناخل آمادگی برای اون روزه های فرض رمضان هست که ما با یک آمادگی کامل ورگ رمضان اللہ تعافیم درودی بخاریم و یک نقطه دیگه دوستان این که تلاش بشه که یکی این که خود ما برای رمضان آماده بشیم یکی این که دیگران را آماده کنیم این تنها کافی نیست که ما خودمون برای رمضان آماده باشیم خب ما چند درصد این جامعه ای اگر نگاه کنید نسبت به شهر فایباد ما یک درصد هم نیستیم یک درصد اما حالا خودمون مخاهر و مادر در خانه فضائل رمضان رو از های مختلف کتاب شیخ الحدیث مولانا زکریا کتاب ریاض الصالحین کتاب معرفت الحدیث هایی که حضرت مفتی محمد تقی عثمانی در خطبات اصلاحی در رابطه با حقیقت رمضان روح رمضان چی حقیقت رمضان چی اینا رو در خانه ها تعیین و باید آمادگی از این حیث که فضائل خوندیم وارد رمضان بشیم و دیگه این که امت رو آماده کنیم انشالله که باید آمادگی کامل وارد رمضان بشن دعوت بدین، ترغیب بدین، تشویق کنیم این رکن اسلام رو، یعنی این روزه رو هر کجا حقیقت اون رو، فضیلت اون رو برای امت بگید. تو نشستای خودمون تو جلسات خودمون تو محافل خودمون در رابطه با رمضان و اینکه رمضان از ما چی میخواد مطالبات رمضان چیه حقیقت روزه چیه اینا رو انشاءالله بیان کنید وقتی دعوت میدید خودتون میتونید بهره ببرید خودتون میتونید اه اون اه هیجانات مثبت درونی رو در خودتون تحریک بکنید، خودتون آمادگی بهتر پیدا کنید، در این حال بتونید جامعه رو هم آماده کنید. اگر دعوت دارید محیط فاسد رو شما تاثیر نمیذاره. دوستان ناباب محیط های فاسد تأثیر منفی نداره لذا منفعلانه عمل نکنید و سر جامون نشینید و تلاش کنیم انشاءالله تعالی که تلاشی بالحق و تواصی به صبر بکنیم، همه آماده کنیم که با یک روحیه، یک انرژی خالصیم که صدای منو فرزندای خودشون آماده کنن و اگر خوهرهای فازلان آلمان بار مسئولیتون چند برابر تو جلسات قرآن خودشون تو محافل علمی خودشون تو برنامه های مختلفی که دارن روی در حقیقت رمضان بیشتر تکیه کنن که با یک آمادگی انشالله همه ما وارد رمضان بشیم. اللہ تعالی این ماه رمضانی که در راهه ما رو به او برسانه و این ماه رو ماه فتح و پیروزی و گشایش و برون رفته از همه موضلات برای امت قرار بده درودی برسانه از بعد از دعا بر من که یک پذیرای مختصری هم هست حالا اگر دام در وسطن که دام در همونجا در هیچ هر کس فذی مختصری بشه بره و اگرم امکان بود بشه نمی دونم که امینجا فذی رای میشه یا نه. او بسمت خدا. دنبه. یه. خب بگم که بسمت خدا را مشنده نیست. ترجیح. لا اله الا الله الحرم والکریم. سبحان الله رب العرشف العظیم. الحمد لله رب العالمين. أسألك موجبات رحمتك عزائما مغفرتك غنيمة من كل ذنب والسلامة من كل إيثم لا تدعنا ظنما إلا غفرت ولا عملا إلا خرجت ولا دينا إلا قضيتا ولا مريزا إلا شخيتا ولا ضالا إلا هديتا ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتا يا رحم الراحمين يا رحم الراحمين يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث برحمةك نستغيث <النس distancing>, برحمةك نستغيث <و> أصلح <از> لنا <الهلامنا> شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عيني يا للجلال والكرم يا رحم الرحمين يا رشف الرحمين يا ذا الرحمين يا للجلال والكرم يا للجلال والكرم يا للجلال يا, yup يا معين المؤمنين يا رجاء المؤمنين یا پیو، یا پیو، یا پیو، یا پیو، یا پیو، یا پیو، یا الله در طول زندگی اوقات اجابت اوقات یا الله بر فضیلت زیاد را دست دادیم یا الله، یا بهترین لحظاتی که لحظه اجابت بود بوده، لحظه کشش تو لحظه گلچین کردن تو بوده، لحظه انتخاب ثمریا الله، تو اون لحظات ما غافل بودیم، تو اون لحظات ما در معصیت و نفرمانی یا اللہ فیلی لحظات بکر و خوف و یا اللہ اجابت و, و زندگی تا حال از یا اللہ عمر ما یا اللہ بنیم رسیده و از نیم گذشته یا اللہ و یا اللہ هنوز میبینی یا اللہ در جامی زنیم نبی تو گفتے کسی دروز و مثل هم باش زرق کرده یا کاش کاشمار دروز ما برابر باشه ہر روز ما بہتر از دیروز یا اللہ بجائی که به تو نزدیک تر بشیم دور تر بشیم یا اللہ اینکه که یا اللہ به قبر نزدیک میشیم به هم اندازه به تو نزدیک بشیم یا اللہ احساس میکنیم یا که بجائی که به تنزیق تر وشیم تاریم دور تر دور تر میشی برکت از عمر ما رفته برکت از وقت ما رفتے برکت از جوانی ما رفته مولا زندگی ما یا اللہ روز مر شده آتل و باطل شده اللہ خودکوشی تدریجی شده لحظات ما بھی چیو پوچی سوک شخص میشه ہفتہ حامیگ ذره ماں حامیگ ذره سال حامیگ اللہ رمضان گزشت تاریم این رمضانی که در را ہے بسید پیلک به حمزلن بسید خواب گذاش یا الله در اینوار در رمضان جدیدی میشیم یا الله در این ما بین این در رمضان خیلی یارو ما دوست داشتیم به وقت کردم و یا الله نچونت سم رمضان دراست ما ما امید داریم که این رمضان جدید برسی یا الله ال نماز آی نبی خودمو رو تکرار میکنیم اللهم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان خدایا شعبان در را و شعبان ما هیک اعمالی یک سال ما باسته میشه و با آصل ما. ای الله یک سال کفرت، یک سال نقصی، یک سال نافرمانی، یک سال نامه عمل پرس خرافی. اے اللہ اینا باسته میشه و یک روزی در حضور انبیاء در حضور اولیاء در حضور خازان است. اینا عمل اے اللہ ان ہمیں ان راہت باو شی اللہ ہمت ترک تو دنیا دیو دی ستاری کر دیو فرد پوشی کر دیو رسوانے دی. اے اللہ در اخرت اب نکو در اخرتم حساب یسیر بھی دیو دی اللہ در اخرتم اے اللہ حساب یسیر بھی دیو کارندگی نہ کر دین اللہ بس چھڈن اعمال وا و بلند شدن اعمال و در طول سال در شعبات ای الله یارا تو خود اثنای اعمال ما رو با تو ببینم با زعفران ببینم با مدامت ببینم با عشق آه ببینم با دل کرست شراری ندامت ببینم که اگر باف شد آخرت تو به ما بگید چا مردیم بگید اخرش صفر <تصفح> اخرش بزنم اخرش شربت بگید اخرش تو برو اخرش تو هم اخرش یالا تو اے اللہ ہمیں عملِ مارو یا اللہ کہ رتول سال در ان شاء الله واسطہ پیش داہو بیا ببر یا اللہ اللہ مارو رمضان درسا و مارو جوز او تا رمضان بفرما مارو جوز ازاد شدگان از جهنم بفرما اے اللہ یا اللہ مالا مارو جوز اندس افرادی که با این رحمت و برکات رمضان محروم من مارو نہ گرد مارو جوز محرومین رمضان یا اللہ مارو درم دعای جبرئیل که لعنت کر کسانی که رمضان رو دریا بان رو رمضان و نار و مغفرت نکنے مارو جزونها نگردان یا اللہ نبی ما بر روی منبر نبوت آمین گو کسی که رمضان رو دریا بان مغفرت نشه اے اللہ مارو عظیم یا اللہ لعنت و نفرینی که جبرئیل کردو نبی ما آمین گو مارو جزینها نکو توفیق بده رمضان رو توری زارونیم که تو راضی بشی تو راضی بشی این همه رمضان به که گه برا این رمضان رو با عافیت توری بکن که تو راضی بشی ان فضلی برا کل امت کو برای کل امت بدر دوباره برای امت و تمه برای امت الا جایجی برای امت الله بزرگ بشائست برای رمضان مثل ای خیر بگو برای جنب ترین روزا و متریاب تا کی ماداگ مادران ماداگ دیده فردا تا کی خونی جنب ترین تا کی جنبیالله به چه شدتی چک نه ای اون در زارا این روزان را با انبات پیروزی جایش رحمت برای قل اللهم بفرما اے الله عصر جدید در دور جدید اسلام و مسلمین بفرما الا بولند کن از این جلسات اقوابین و فهران و مادرانی که در این جمع افرادیکه یاث امت رو به امید تذلیل کن روح مصطفی را شاد باغیات الصالحات و صدقه جاریه برای همه این بانیان این جلسه واشان ای الله رمضان مارو از این انوار برکات رحماتی در شعبان و رمضان بخاصان و مقربان و نیکان و نصیب کردی با آفیت اللہ با آفیت لما هم نصیب فرمائید یا الله بزرگ ما هر خواهر و برادری که هر, برا هر حاجت دینی دنیوی مشروعی داره الله حاجات رو برآورده بفرماید الله تمام ان که در خاص دعا کردن برای حوائج دینی و دنیوی مشروع خودشون یا الله همه اونها رو به حاجات اونها و یا الله اونایی که مشکلات داره مشکلات رو سان الله آسان بفرمایا تمام کسانی که این مجموعه مثل حضرت عثمان یا اللہ تلاش می کنند. در شعب آئی مختلف در آئی مختلف با مالشن با جانشن با وقتشن اگر ہمی موجود دیشن مایق رشکن یا اللہ اللہ ما شرمنده یا اللہ تخد تزین غدردانی کن پر زندانین ها رخنکی چشمانین ها کن پر زندانین ها باغیات سالعات کن یا اللہ و ایلا سعادت دنیا و آخرت نصیب تک تک انها بفرمایی اللہ غربالدین ما اساتید مشایخ ما سعادت دارین آفیت طول عمر و عزت نصیب بفرمای ربنا تقبل منا انتا السمیع العلیم و تبع علینا انتا التوضاب الرحیم صلى الله علی سیدنا محمد و آلی و سعب جمعین آمد رحمتک